بسم الله الرحمن الرحیم به فضل الله مرفوعات تمام شد منصوبات تمام شد رسیدیم به المخفوضات ای المجرورات رسیدیم به مخفوضات من الاسما از اسما خب اینون هم ناورده بود مسلم هست که مخفوضات مخصوص چه هست اسمها هست فعلها مجرور نمی شوند المخفوضات ثلاثة أنواعين مخفوضات برسنوا مخفوض بالحرف ونكبه حرف مجرور بشي ومخفوض بالإضافة ونكبه بوسيله إضافه مجرور بشي يعني مضافه إليه وطابع للمخفوض ونكبه تابع. مخفوض یا مجروری باشه قبلا این بحث توابه رو دیگه مفصل خوندیم نیازی به تکرار نیست خود نویسنده هم همین کارو کرده و اینجا دیگه توابه رو دوباره تکرار نکرده همون توابهی که در بحث مرفو مرفوعات مفصل خوندیم یعنی بدل و توکید و عطف و نعت اگه تابع مجروری باشن دیگه مجروره هست. خب. فأما المخفوض بالحرف ابتدأ يد مخفوض بوصلي حرف رتزمي ده، فهو ما يخفض مخفوض يا مجرورة بحرف، أكثراً كلمات مجرورة بكرمي براذ ما يخفض بمن أونية كمجرورة بوصلي من وإلا وعن وعلى وفي ورباء والباء والكاف واللام، هنا مشهور ترى الحروف عصا كمجرورة كذا وحروف القسم وحرف هاي القسم. حرفای قسم سه تا بودند در قسمت اول کتاب امینا رو البته خوندیم در قسمت اول اجرومیه جایی که علامات اسم رو خوندیم گفتیم که از علامات اسم این هست که حروف جر برش وارد حروف قسم سه تا هستند هی الواب و الباو و واب و باو تا در قسمت اول خوندیم که واو فقط بر اسم ظاهر وارد میشه مانند والله و طوری و تینی... آخر که الله متعال قرآن همسله زیادی درش وارد شده با فقط بر اسم با هم بر اسم ظاهر و هم بر زمیر وارد میشه با خلاف واف که فقط بر اسم ظاهر وارد میشد مانند بیلهی مانند بیکه و ثومیش هم تا بود که اون فقط مخصوص لفظ جلاله هست فقط بر لفظ جلاله وارد میشه مانند تالله لأکیدن اصنامکم او حروف دیگه هم داریم به واب ربه یک وابی داریم بهش میگن واب ربه مثالی رو نویس شعره ها ورده و لیلن که البحری ارخا سودولهو یعنی و یعنی رب لیلن خب و حروف دیگه موز و منظ هستند حروف دیگهی که از جارها هستند و مجرور می کنند و من هستند که بر ازمنه بر زمان وارد می شوند به معنی من هستند اگر ما بعدشون ماضی باشد ما رعی تو زیدن موز یا مل خمیس اینجا موز به معنی من هست یعنی ندیدم زید رو از روز خمیس یا جمعه یا هر روز دیگه پس موض و موند به معنی من هستن اگر به معنی ماضی باشه جمله و ما بعدش و به معنی فی هستن اگر به معنی حاضر باشند مانند لا اکلمهو موض یومینا یعنی سخن نمیگویم امروز باش، در امروز که همون به معنی فی هست نقطه دیگه ای رو که نحوی ها ذکر می در رابطه با موض و منز اگر بعد از موض یا منز فعل اومده باشه خب اون موقع ما میدونیم که این موض و منز دیگه اسمند چون حرفها بر فیل وارد نمیشند. این نقطه خوبه یا اسمی اومده بود بعد از موض و منف ولی مرفوع بود اونجا باز هم میدونیم که این موض و منف اینجا چه هستن؟ اسم هستم پس گفته بود مخفوض با حرف موض و منف که آخرین هاشون بود نقطه بسیار علمی رو در رابطه با اینا توضیح داد پس مجرور به وسیله حرف مفصلن بیان شد یکی از این حرفها بر اسم بیان اسم چی میشه؟ مجرور مشه واما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك اما اونيكي بإضافة مجرور مشه ماننده غلامو زيدين غلامو زيدين زيد انجا بإضافة مجرور شده يعني غلام مضاف هست بزيد وهو على قسمين نيجي مضاف يا مجرور بإضافة بر دلو هست و ما یقدر باللام اونی که لام برش مقدر میشه اونی که چه چي چیزی برش مقدر میشه لام فالذی و ما یقدر بمن و اونی که من مقدر هست فالذی یقدر باللام نحو اونی که لام مقدر هست مانند غلام و زید یعنی غلامو لی زید علامو باب المدرستي یعنی بابو لل مدرستی والذي يقدر بمن نحو ثوب خزن بابو صاجن خاتم حدید ببینید در اینا چی چیزی مقدر هست من موقعی میگیم خاتم حدید یعنی خاتم من حدید خاتم از چی از آهن انگوشتر خاتم منی انگوشتر پس زمانی که من مقدر باشه میگه زابطش همین هست که مضاف جزی از مضاف ایله هست مضاف جزی از چی هست؟ خاتمو حديدن. خاتم او حدیدین خاتم جزی از هست؟ از حدید هست و اما زابطه در فی که این کتاب ذکرش نکرده است یعنی دو نور آور رو آورده است اما ای رو که در اون اضافه به معنای فی باشد رو نیاورده است که شارحین آورده اند ماننده بل مکر اللیل بل مکر اللیل مکر اللیلی مکر اینجا مضاف هست اللیل مضاف الیه هست به معنیه لام هست نه مکر لیل که نمیشه یا من لیل نه مکر از جنس لیل که نیست جزی از اون نیست مکر فل لیل. در اینجا مضافون الیه که لیل باشه ظرف هست برای مکر یعنی مکر در شب انجام گرفته مضافون الیه ظرف هست برای مضاف پس در زمانی که اضاف به معنی فی باشد ظابطش این هست که مضافون الیه ظرف هست برای و چند تا آورده بود مایو قدر رو به لام رو به میل رو به فیر رو دیگه آورده نه آورده که توضیحش تمام شد پس چیز خاصی رو نه آورده مرفوعات آورده بود هفتا بودند منصوبات 15 تا اما مدرورات دو تا به عبارتی یا بگیم همون سه تاگه تابه رو حساب کنیم مدرور روسیل حرف جرف مجرور بوسیله اضافه و اونی که تابع مجروری باش این ستا مجرورند و مجروری دیگه ما نداریم علامت های جر هم که خونديم فتح کسر و یا حالا در این درس کمی توضیحه که بدهیم موقعی که میگیم فلان کلمه مجرور هست معنیش چه هست بسیاری از طلبه ها گیج از اینکه که مجرور یعنی چی مجرور یعنی این که آقا کلمه این مجرور شد یکی از این سلاماتو بشویدی با زبان خیلی ساده ی ساده شما هر کجا مجروری رو ببینید در زبان عرب حالا چه حرف جری سرش اومده باشه چه مضافن اله باشه چه تابع مجروری باشه یا فتح داره یا کسر داره یا یاد داره مرر تو به زیدن این کسر داره مرر تو به عمره این فتح داره فتح مخصوص غیر منصرف هست فتح مخصوصه یا یا داره مرر تو به مسلمینی مرر تو به المسلمینه مرر تو به اخیک معنی مجرور بودن اینه که یکی از علامت ها جر روش میدین حالا کدومی رو فتح بدیم کدومی که رو کسره بدیم کدومی که رو یا این هم چیز سادهیه مفرد منصرف و جمع مکسر منصرف و جمع مؤنث اینا کسره میگیرند غیر منصرف ها حالا چی مفرد باشه چی جمع مکسر مجرور کشیدن فتحه میگیرند مگر در دو حالت که خودش میاد الف داشته باشن یا مضاف باشن و مسند جمع مذکر سالم و اسم های سته یا خمسه هرگاه مجرور شدند یا میگیرند این بحثو اینجا توضیح دادیم به که در منصوبات و مراکلات خیلی مفصل بود. به فضل و الله متعال تا اینجا کتاب اجرمی تمام شد و آخر دعوانا علی الحمد لله رب العالمین.